دانا بپرسید پس داد گر، که فرهنگ بهتر بود گر گوهر، گر یعنی یا، چون این داد پاسخ به دو رهنمون، که فرهنگ باشد ز گوهر پجون، گوهر بی هنر زار و خارست و سوست، به فرهنگ باشد زوان تندرست، نواند جان و خرد که این برتر اندیشه برنیزند. سلام از میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه پنجره های روبه محتاب. در خدمتتون هستیم امشب یک شنبه شب با حضور آقای دکتر فریدون جنیدی. خیلی خوش آمد. شب شما بخیر باشه ورود بر شما روزگار شما خوش خیلی هم لباستون قشنگه اینو من بگم اینا چوباد بگم برای اینو نمره از من آره این کارو بکنید آخرین جلسه‌ای که من در بودم نمرتون 20 شده بود و من یادم رفت بگم حالا امروز اجازه امشب بگم. شما در کوشش کنید آره امشب باید بیر. بمونه نه البته بخاطر نمره نبود اما لباس برازنده ایست و لباس نشان شخصیت آدم هستش و نزد ایرانیان این بوده با توجه به صحبت که خود شما فرمودیم بله ما تنها کشوری بودیم که لباس داشتیم و درز و دوختن و که در انگلیسی شد در, و در جاهای دیگه ما داشتیم لباس رهاورد موس به جهانیان برای که در زمانی که ما پوشش داشتیم و چه زن چه مرد با پوشش با آهنگ خوش جهان رو تیمی کردیم عرب برهنه بودند پیش از اسلام بسیان نیمه برهنه بودند یونانیان و رومیان نیمه برهنه بودند اخباری که ما داریم بینیم که روسا تا تقریبا تا چند قرن پس از اونان نیمه برهنه بودند ترکان نیمه برهنه بودند و ترکان در اینقدر مرکزی که از شما دومده بودند و هندیان هم نیمه برهنه بودند این تنها افتخار ماست که جامعه رو پوشیدیم و به جهانیان ارزه کردیم و اون دوخت رو انجام داریم آفتن رو و بعد دختن رو در دوران جمشیدینا رو پیشتر دورشتو برکردیم من دوباره این رو تکرار کردم و با توجه به لباس دیبایی که شما پوشیدید. و همیشه این آراستگی بوده برای ایرانیان و زنان و مردان پوشیده بودند بله اینطوره وقتی که شعبته مغایر میاد به به عنوان فرستاده میاد به پیش سپاه ایران پیش راستان فرخصوهاد میبینیم که طلایه یعنی پیشانگان سپاه اینچنین میگن که آمد فرستادهی پیرو سوست نه اسب و سلیح و نه جامعه درست یکی تیغ باریک برگردنش پدید آمده چاکی پیراهنش این خیلی زشت بود برای ایرانیان که چاک پیراهنشون معلوم بشه. نباید گردن و چاک پیران دیده بشه. این که میگن عاشق سینه چاک یعنی کسی که عاشق شده و به مرحله رسیده که دیگه, دیگه نزدیک به دیوانگی است و سینهش چاکه. چاک سینه و اینها اصلا نباید دیده میشود گرقه باید حتما بسته باشه و جامعه به آین باشه. البته در گوشه های ایران جامعه ها خیلی خیلی خوب بود در هنگامی که پهلوی اول خاص از ایران سرباز کنه بر خودش درست کنه و اون پوشاک ها را ازشون گرفت و لباس سربازی فرانسوی ها رو به ایرانیان پوشوند دیگه اون وقت کم کم مردم اون رو ها را وگرنه کردن همه جای ایران جامعه و آین بود از آذربایجان، کردستان، لورستان، بختیاری، قشقایی کرمان های کرمان خوراستان سیستان بلوچستان بلوچستان خوشبختانه هنوزم، بله. بلوچستان بیشتر از همه جا جامعه با آین باستان هست و متاسفانه یک شخص اینا رو گرفت دریقا که اشخاص میان و به خاصیت خودشون ضربه میزنن به فرهنگی کشوری به فرهنگی مردمی که چند هزار سال این فرهنگ پایدار بوده در صورت جامعه به این ترتیب دارم باید ولی من امیدوارم بازم ایرانیان برکردن هر کدوم از استانها جامعه یکان خودشون بپوشن اون وقت میبینید که چقدر خیابون ها زیبا و به آرایش میشه اگر مردم جامعه های مختلف. رنگ های خوب همه جامعه ها به آین و خیلی خوب این آرزور من دارم انشالله ما در برنامه پنجرهای روی محتب شنبه ها یعنی روز قبل با آقای دکتر یاوری هم اتفاقا در این مورد صحبت خواهیم کرد که تو لباس هم هستن و می‌شناسن لباس اقوام و در مورد هنرهای سنتی ایران صحبت میکنند در مورد لباس هم اتفاقا یه بخشی رو داشته باشیم در مورد لباس اقوام مختلف ایرانی خوب شد که اینه این فرمودین من یکی از شاگردانم از فزندان بنیاد به من ایراد گرفت که بعضی از این واژه‌هایی که شما می‌گیید ما در گیلان هم همونو میگیم ما در ببینیم و الان همه جور گفتم غیر از گیلان و تبرستان اون هم جمهوری با آینه خیلی خیلی زیبا داشتن لباس قاسم مبادی لباس تبرییی خیلی خیلی عالی بود و گرگان خب من اینو فراموش کردم اضافه کردم تا اگر من کولویری بیشتر میگم یا چی رو بیشتر میگم یا لوزی یا بختیاری رو خب برای اینی که اون زبان ها رو بیشتر میساستم زبان گیلکی رو کمتر این نیست که واجه به آین درست در گیلکی و تبری وجود نداشته باشه خوراستان خوراستان با... هم نفرمودین خب بردنی خودتونم خراس... هم شما خواهیتون با... نفرمی اوندارو من زیاد نباید بگم بگم دیگر بگم, <تصفح> <تصفح> بگم. درستان بعدم لباس هایی بسیار زیبایی دارن آراسته حیفی <تصفح> از بین رفته اکثرش دیگه اما خوددارشو این چیزی که شما فرمودید ما میبینیم تو اونجاها، ها تو اون خودمون شهر شهرستان ها روستاها ها داریم این لباس رو میبییم و انشاالله این اتفاق بیفته که بیاد و مردمی ما که از اون جاها می بتونیم این جامع ها رو بپوشیم جامع های آراست و زیبا رو بپوشیم حتی در شهرهای بزرگیم این اتفااق این تو ها آراسته میشه با خیلی با حجاب خوب با پوشیدنی خوب و با و نشان فرهنگ وقتی که انسان جامعه خوب داشته باشه اون جامعه به شخصیت و وقار هم میده یعنی شما نمیتونید با یه جامعه بختیاری خیلی حرکات توند و بی‌معنی بکنید با جامعه کرد یا آذربایجان فرق نمیکنه جامعه به انسان یه منش میده ولی من خودم به خاطر دارم که وقتی که متاسفانه این چیزی که گفتن اصلاحات ارضی که تخریب ارز بود و ایران رو واقعا ویران کرد روسته ها رو از بین برد. اتفاق افتاد و معمول این دولتی می مدن به روستاها ها من در نیشه بورد میشنیدم که با بدی می که مثلا فلان کس از فلان اداره اومد با, با پرن نیماستین یعنی با پیراهن نیماستین این رو زشت می دونستن اتفاقا همین موضوع در ذخیره خارز شاییه نوشته شده که م... د... که بله ما در حالی که حاضر نیستیم دست خودمون رو به کسی نشون بدیم وقتی که کار رو ایجاب میکنم اینها خب ام... لازم باشه که بیشتر از این هم آسین رو اینا رو برهنه میکنیم ولی این همین حد سخنی که من در رستوها از رستوی هم میشیندم میبینیم در زخیره خارس شایی اومده که این زشته نباید پیکر و اندام انسان حالا اون چیزی که خلاف فرهنگ اروپایی یونانیه. یونانی ها. و فرزندانشون که الان در اروپا هستن و آین با عایننی آگاه نشوند نه بله. خب من تلفن های برنامه خدمتون کنم که شما تماس بگیرید با ما البته لطف دارید های فوزنده عزیز گفتن که قبل از برنامه نیم ساعت قبل از برنامه شما تلفن دو ساعت, ساعت گفتند و الان دو, بله ساعت بلوش. بلوش. دو ساعت قبل از برنامه ما برنامه پنجرهای رو مهتاب این اتفاق میفته، لوت میکنید، تشکر میکنید، اما تشکر نمیشه. برنامه ما یک نگاه پژوهشی داره. در یک فضای خیلی صمیمی این اتفاق میفته و استاد برای ما از داستانهای شاهنامه میخوانند، رمزگشایی میکنند آقای دکتر فریدون جنیدی و ما میشینیم و این اتفاق باید بیفته به نظر من. و خدا رو شک افتاده گفتاد تا ال تلفن های برنامه چون میخوام بیس بگیرم خیلی آروم میخونم. اینا رو همرو <تص> دیویست و بیست 220، هشتاد و پنج دیویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج دیویست و بیست و هشتاد هشت دو صفر دیویست و بیست و هشتاد و هشت دو صفر و شماره پیامک سی هزار و پنجاه و هشت سی هزار و پنجاه و و پایگاه اطلارسانی ما دابلیو هست شما از دقیقه ماوار اقوامتون خارج از کشور هستند یا میخوام برنامه های ما رو بشنوم روی ماهواربر به ماواردبر شما میتونید اون بخش رادیوهاش رو بگردید حتماً نام نام زیبنده رادیو فرهنگ رو خواهید یافت و در اونجا میتونید برنامه های ما رو کل شبکه رو بشنوید همطور برنامه ما پنجره های رو به مدا که حتما بشننووی. آقای هدایتی من اینجا بیفزیم که هفته گذشته از احواز زنگ زدن به بنیاد شعب که ما خ... یعنی برنامه گذشته رو نمیتونیم رو رادیو بگیریم. و وقتی کاری بشی که این خود دروسی من آره هم توره به من قبل گفته بودن گرفته این اینو اینو باید درستش کنن که ما اینا ما حتی در پیامک ها بعضی از دوستان برای ما پیامک میزنن این رو هم میگن این رو دارن درست میکنن ان امید, امید, امید خدا این مثل این چیزا نباشه مثل این سیدی دی ها اینا نمیشه ولی بله بله هم... بعضی وقتا با شکایت میخوام به من که بین گفتارهای سنگین شاهنامه رادیو جوان میاد و شروع میکنم به صحبت کردن ما خیلی کوشش میکنیم تا دو مرتبه برگرده رو رادیو فرهنگ این نقش برای یک دستگاهی که نامش هست رادیو فرهنگ به نظر من زیبنده این میستیم این دست ها متاسفانه اتفاق مستیم به خاطر انوازی که هستش و این رو دارن درست میکنم من شنیدم از خوزستان درست میکنم. از خوزستان شمال گفتن من پیامک داشتم از مثلا به از عراق هم مثلا به من گف اونجا ها به من گفتند چشم باز هم من یاده بری میکنم اینجا لطف کردید که فرمودید من یه مطلب دیگه ایم خدمتون رو ارز کنم شما آدرس اینترنتی پایگاه تلارسانی بنیاد نیشابور رو خواستید که من این رو از دستاد جنیدی گرفتم خدمتتون رو ارز میکنم در طول برنامه بازم ارز میکنم www.boniat.com نشابور .com .com. من اینجا بیاب که مدتی که میخواستیم ما برنامه رو سنگینتر بکنیم برنامه اینترنتی مثل که یک کسی دیگه دات کام بنیاد دات کام رو گرفته و یه همچی کارهایی در دستگاه اینترنت و کمپیوتر اتفاق میفته که مثلا از ما بخواد امتیازی بگیری تا اون با ما پست بده فرزندان بنیاد مشغول هستند که برنامه رو کامل بکنند تا یک هفته دیگه برنامه میاد روی اینترنت اگر دات کام نگرفت دات ایر بگیریم من آی آر نمیگم برای ایر میگم برای که ابتدای نام گرامی ایران رو باشیم دو و. دولیو دولیو دات دو دو بنیاد نیشابور کام یا ایر آی آر <سؤال> <سؤال)> و صدام های که برای وقتی که به تلفن‌های بنیاد رو ارج می کنم خدمتتون 889 627 84 889 627 84 و دورنگار یا همون فکس 889 622 43 889 622 چهل سه خب این کارا رو من انجام دادم که میخوایم بریم سر قصه امشب داستان امشب که داستان رسیدن کیخسرو نزد کاووس شاه هست با هم میشنبیم خوب میشنبیم و خوب هم سؤال میکنیم. رو آمد شهریار جهان گشت پر بود و رنگ و نگار با آزین جهانی شداراسته در و بام و دیوار پرخواسته من در این بار پیشتر از این چند بار گفتم که تمام مردم شهرها در رهگزار یک سردار یا پادشاه یا سپاه پیروز آزین میبستن چی. که وسائل زیبایی که داشتن میوردن بیرون به دیوارها و به بامها و اینها آویزو میکرد که سپا از میان یک جای زیبا تاق نفرت میبستن تاق پیروزی, پیروزی. چکابوس که روی خسرو بدید سرش کشت مزگان به رخبر چکید فرود آمد از سخت و شد پیش به بمالید و چشم او چشم روی جوان جهانجوی بردش نماز گرازان سوی تخت رفتند چه از تخت کابوس برخواستند به ایوان نو رفتند آراستند بر رو رنگ زرینش بنشاندند و رو بسی آفرین خواندند. به گردان ایران کمر به جز توس نوزر که پیچید سر از آن کار گودرس شد تیز مغز برای او پیام میفرستاد فرستاد نقض اینجا رو من در هفته پیشم اشاره کردم انجمن معیستان ایرانه در انجمن معیستان ایران سه بخش امده بوده یکی خراسان که در حقیقت سرداریون با توس بوده یکی نیمروزان که سرداریون بازار بوده سیستان و یکی خوروران که آزربایجان و کردستان و لورستان باشه که با گودرز بوده در این هنگام سرداری انجمن منیستان با گودرز بوده. میبینیم که دو بخش از ایران موافقت میکنن با پادشاهی که خسرو و خراسان موافقت نمیکنه. بعدها هم در میان داستان میبینیم که گروه از خراسانیان اون سوی مرز حتی با, با که خسرو مخالف بودن و برای همین که جنگ خیلی دامانه دار پیش میاد خراسانیان در حقیقت آسیای میانین. میان به جنگ علت چی بوده فعلا نمیتونیم بگیم ولی اونو حتما یه دلیل داشتن برای این کار در حصد خراسان با این مبارزه میکنه با نشستن که خصو بر تخت بزرگان از آن کار گودر شد تیز مغز برای او پیام فرستاد نغز بزرگان و گردان ایران زمین همه شاه را خواندند آفرین چرا سرکشی تو به فرمان دیو نبینی همی فر کیهان خدیو یعنی فر پادشاه جهان اگر سر به چیز فرمان من مرا با تو کین خیزد و به فرمان شاه مرا با تو کین خیزد و رزم گوهرستادگی وستو پیغام من به دستوری نامدار انجمن یعنی تمام اعضا انجمن میستون که خوروران و نیمروزان جزوون بودند بیامد به, به توس سپهبد بگفت که این رای را با تو دیو است یعنی این اندیشهٔ تو رو دیو در حقیقت رهنمای توست چو بشنید پاسخ چنین داد توس که برمان نخوب است کردن فوسوس فوسوس یعنی ریشخند کردن این واجه در ابستا بوده اپس سوچ عطا یعنی پیشوندی که از دور سخن میگه و سوچ یعنی سوختن یعنی از دور سوزوندن میدونید که از دور با... کسی رو فقط با گفتار میشه سوزند یعنی گفتارهای درشت به طرف بگن و او از دور بسوزه اگر از نزدیک باشه خب تو آتش میره یا یه چیزی فلز داغی به تنش میخوره این از نزدیکه از دور سوختن فقط با گفتاره و در نسل فارسیام بوده افسوس افسوس یعنی ریشخند یعنی گفتاری که بسوزنه انسان را و می بینیم که در دورهای نخست عدب فرسی هم در زبان فرسی افسوس بوده مثلا آده اف برست این جهان فرسوس با آده پیشار مرچه با از رودکیه یا آخر از افسوستان نیاید از آنک مور که در دست مشتی افسوسیست است افسوسی این کسانی که نادان هستند و امارات و وزارت و بنار گرفتن و با نادانی خودشون کار میکنم و این نیست شیر از انوریه داریم پرسته که شما افسوسیتون نمیاد یعنی از دور شما سوخته نمیشید دلیتون سوخته نمیشه که یکی افسوسی ریشخندگر ریش اومدن ملک و پادشایی ری گرفتن بعد درشانامه که همه جا همه طور هست و تا مثلا قرن هشتم نهوم هم افسوس به عنی ریشخند بوده و خود ریش یعنی ریش یعنی زخم یعنی خندیدن به زخم کسی آره دلم دزوق... ریش ریش شد آره ریش ریش شد اونجا اومده این که روی صورت مردان هست این ریش هست اون ریشه ریش خند یعنی خندیدن به زخم کسی ریش و افسوس یک معنی داره هر دو از دور سوزوندن یا زخم کسی رو آتیش دادن این که بر صورت هستش ریش رش... بله ریش ریش نه ریش یه نداره یه کوتاه داره یه کوتاه داره بله میفرمی اه... چو بشنید پاسخ چنین داد توس که بر ما نخوب است کردن فسوس به ایران پس از رستم پیلتن سرفراز ترکس منم زنج و من همین بیمن آین و رای آورید جهان را به نوکت آورید این کاملا اشاره ای توسه به این که بدون حضور خراسان در انجامن محیستان پادشای بودن. نوکت خلال یعنی پادشای تازه. بدون حضور من شما پادشاه انتخاب میکنید. نمیشه این که دکتوری میشه. در حال که در انجام میستان باید از همه گوشه های ایران درش باشن. نخواهیم شاه از نجاد پشنگ فسیله ننی کو با, با پلنگ فسیله یعنی گله عصب من در این بار پشو فسیله صحبت کردم فسیله گله عصبه یک فسیله یعنی گله عصبی که در داشی باشه پلنگ اونجا باشه این درست نیست و تیخسرو از طرف مادر از نجات پشنگ تورانیه ما نیست فریبورز و کاووس فرزند شاه هزا وارتر کست به تخت و کلاه، به هر سو سه دشمن ندارد نجاد نه از پدر نه از مادر، همش فر و برز است و هم نام و داد. بیا آمد به کشباد گفت یعنی گیو که فر و خرد نیست با توس جفت. دو چشمش تو گویی نبیند همی فری برز را برگذیند همی فری برز، فری برز یعنی کسانی که بر فراز کوستان البرز هستند. یعنی همین جایی که امروز مثلا بین آمل و تهران و بین ساری و مثلا و این طرف غزبین و اینا, اینا اینا نام این تیره بوده فریبورز در پهلاوی که حالا ما میگیم فریبورز. دو دوچشمش تو گویی نبینت همی فریبورز را برگزیند همی براش شفت گودرز و گفت از نهان تنه توس گم بادندر گمباد اندر جهان, گم ان جهان. قمین شد از اون توس و اندیشه کرد که امروز اگر من بسازم نبرد نباشد جز از کام و افراسی ها یعنی بخواد با خورواران ایران رو جنگ بکنه یه جنگی داخلی؟ تنش بله تنش گمباد یعنی بمیره اصلا گم و گور وقتی میگیم گم و گور یعنی کسی که در گور گم شد یعنی گمم بوده کمب خم کو خومب یعنی پناهگاه یعنی جایی که پنهان میکنن کسی رو حال این در رو هنوز در واژه گم و, و من در گردداری که از روستایی یه شین که میگن می گفتفت گفت گمب و گور یعنی گم همون کم به ابستایی یعنی خوم وقتی که کسی میمورده اگر دسترسی نداشتن به دخم اونو تو خم میگذاشتن که پلییش به زمین و اینها نرسه و حتما شما میدونید در این های باستانشناسی خیلی از این خمرها ها پیدا شده که توش جنازه است. تن توس گنباد یعنی به گور بره یعنی کشته بشه. حالا اکسال عمل توس اینه. غمینی شد از آن توس رو اندیشه کرد که امروز اگر من به سازم نبرد نباشد جز از کام و افراسی سر بخت توران برای از خواب. یعنی جنگ داخلی اتباب نفته و اونا از خدا می بدیشان رسد تخت شاهنشهی سر به ما روزگار بهی. یا مهی خرد مردی جو راه فرستاد نزدیک کابوس شاه. که از ما یکی گربرین دشت جنگ نهد برکمان چوب تیر خدنگ. یکی کینه خیزد که افراسیاب همه شب همین آن ببیند به خواب. این یعنی آرزو میکنه که یه چنین چیزی بشه. تو بشنید کابوس گفتار راست فرستاد کس هردوان را بخواست که بردرگه این بی انجامن چنانچون بباید به نزدیک من یعنی بی سپاه بیان. اونطوری که لازمه و شایسته است. این صرف من متوجه این رویداد هاست می نید الان دو سوی ایران دارم با هم دشمن بشن. تا توس خط بررزید من نخواست این کارو میکنم. اصلا جالبه در اون موقعی که من در تاجیکستان بودم حالا به خاطر این حال شما عرض کنم یه جنگ داخلی بود به این جنگ نمی برادر کشی میگفتن خود کشی یعنی خود میدونستماسفانه من در همون جنگ ها و اون کودیتایی که اینجا رو <تصفح> که در دوشنبه چهل روز چل دو روز من در دوشنبه بودم در پایتخت تاریستان کشتار سوختار کشتار میکنم خود کشتیم میکنم خودن. این اتفاق قرار بود در ایران بیفته. و توس نگذاشتیم نگذاشتیم بخوایی آبی بخورید نه لازمیست پیامک ها بخونم پیامک بخونی ولی من میدونم به خاطر نارا... حالتون هست نه نراحت شدم از این جریان دیگه میبینی شما هر وقت اینجور چیز رو میرسیم به شانومه اکسال امر هم همین صرف هست همه اینت بخونم, بخونم با اینجا شما میبقید حالی خود فضا اول چه پریامت اومده چقدر هم پریامت زیاد اومده و من سعی میکنم همه رو بخونم آقای دکتر جانیدی هم کتاه پاسخ بدن سپاسگزارم. درود در استاد عزیز آقای جنیدی و مجری محترم لطف کنید بگید که تمام آیا تمام واجه های شاهنامه پارسی هستند یا نه با سپاس فراوان نه گا گا گو واجه های تازی درش هست نخستین کسی که این رو برسید که از روان شد باهار بود که گفت درصد واجه شاهنامه تازی است البته او با توجه به همه افسده ها حالا که افسده ها رو من مشخص کردم در گفتار خود فدوسی خیلی پایین تر میاد یعنی از پنگ درصد شاید برسه به یک درصد اما هست نه اینکه بگیم کاملا فارسیست نه در منابع تاریخی که نوشته مرحوم پیرنیا هستش سوال کردند که تا چه حد این منابع ایرانی هستند و باقی مانده از دوران باستان هستند اینو فهندش عزیز السؤال کرد که چنا بعد این همشگی براناس پیرنیا نوشتنکشی بود که خاصی تاریخ جامع بینیشه منطور منابش قلبی بود شما اگر بخواد امروز یک کاهانسالین تاریخ ایران رو ازش آگاهی پیدا کنید کار بزرگی روان شاد امیر مهدی بری رو باید بخونید که تحت عنوان یونانیان و بربرها 15 جلد و اون رو باید بخونید برای که یک ایرانی نوشته و در حقت اون روی سکه تاریخ رو روشن کرده چون اروپایی ها همه جا به نفع خودشون سوال کردند. با این حال کارپینیا به زمان خودش خیلی خوب بود. سوال کردن سلام به نخدمتون در مورد زبان های آریایی توضیح بین های منظور همان شاق های مختلف زبان پارسی است. خب میدونید که آریاییان حرکت کردن به اطراف جهان و اروپا رو گرفتن و به آسیا مرکزی رفتن و بعد کوهانترین زبانی که ازش ما مدرک داریم زبان در جهان زبان است که مادر همه این زبان هست من هفته پیشم این رو گفتم ما با زبان عوستایی رو بگیریم مثل ریشه یک درخت وقت زبان پهلوی و زبان های ایرانی میانه میشه تنه این درخت و زبان های امروز آریایی میشه شاخه های این درخت وقت این زبان و این شاخه ها وقتی زندگی خواهند داشت که به تنه تا به واسفه ای تنه به ریشه پیوند داشته باشن مطابق متاسفانه اروپاییان برای که خودشون رو جدا کنن خودشون رو برتر نشون بودن یه زبان ساختگی درست کردن به نام هندو اروپایی و بعد اون وقتی که آلمانی ها قدر کردن اون هم هندو جیرمند درست کردن نمی خواستن که بگن ما بودیم بنیاد همه این هم نادرست بوده و من از مسئلترین ایرانشناس امروز جهان که فراه باشه پرسیدم یه وقت در اصوری هم برای سخن را رفتیم من ازشون پرسیدم شما چرا میگین هند اروپایی اگر یه حلقه این زبان هند باشه یه حلقه اروپا باشه حلقه میانین ایرانه چرا نام ایران نمیارین نام هند اروپا رو میارین این گفت که خب به این دوستو مهاجرت کردن و ما این نامو میگیم گفتم هنوز که مهاجرت نکرده بودن شاید یه سیلی میمست شاید, شاید جهان میمست میشد. هنوز که مهاجرت بودم و نه هند و نه اروپا پدید اومده بود این زبان اینا چی بود خیر از ایرانی یا آریایی حالا حد من گفت نه آخه ما به دو سو که رفتن نام دادیم گفتم اگه این طوریه شما بگید زبان استرالیایی آمریکایی، برای که تا اینجا هم اومدن گفت نه اون زمان که اینا نبودن گفتم آقای فرای اون زمان هند و اروپا هم نبود شما چرا بفهمید؟ لیشار فرای سر پاسخ نداد. اروپا خود برتربینی داره اروپا بدبخته و اینا نمیخوان باور کنن که دیشو همه اینجاست من از این واژه ها میبینید کم کم میگم مثلا الان همین شعر آغازینی که خوندم گر گفتم یعنی یا این در فارسی که هن هکر بوده در فارسی در پهلوی شد هکر در فارسی شد اگر و بعد اگر مخفق شد شد ار یعنی یا این اور انگلیسی یعنی یا میبینید؟ نمیخوان باور کنن اونا یک دانشگاه های درست کردن یک دروغ سرهم سر هم میکنن برای که بگن ما ما هستیم. ما آریایی هستیم. نه مادر پیر و کهانسال جهان آریا ایرانه و از دور داره به این حرکات زشت نگاه میکنه و اما من میبینم که جوانان فروخ امروز ایران دارن بیدار میشن و یک جنبش فرهنگی خیلی خوبی رو آغاز کردن تا نشون بدن که ریشه ها در کجاست و ماایا ها در کجاست. سلام خسته نباشید برای سومین هفته این سوال رو میپرسم. ببخشید ایرانی ها از کدام سرزمین وارد ایران شدن و بعد به کدام کشورها رفتن؟ یه بخش رو سوال فرمیدن. خب بله این همون همونی که اروپایی ها برای ما افسانه درست کردن. ایرانیان از آغاز در ایران بودن، از هیچ جایی نیمدن، اونا برامو ساختن چون وقتی که کوش کردم دیدن که یک چیزهای خیلی درخشان متعلق به بیشتر از خوامان و ماطها در ایران هست پس گفتن اینا ایرانی نبودن و از جای دیگه اومدن جالب اینه که مغول ها اومدن به ایران حمله کردن و بعد برگشتن ما, ما می دونیم مغولستان کجاست و بعد از مقدونیه و یونان به ایران حمله کردن و برگشتن ما می مقدونیه کجاست بعد عرب اومدن حمله کردن برگشتن می که عربستان کجاست و همینطور تاتارها و همه این کسانی که قوزان و اینا که اومدن جای اصلیشون معلومه اما این اروپایان هیچ که نتونستن بگن که اگر آریایان یعنی ایرانیان اول یه جای دیگه بودن اون جای اصلی کجاست یکی میگه سی بوده یکی میگه کناره دانوب بوده یکی میگن شمال بوده هیچ کدوم جای اصلی اون آریایان و باستان رو نشون نمیدن اما خب خوشبختانه ما به اون مرحله رسیدیم که خودمون بتونیم با توجه به کتاب خودمون کهن‌ترین کتاب جهان که وندیدات هست می‌بینیم که ایران رو همینجا میگه و جایی به اینجا مهاجرت نکردن. مطمئن باشید که نیاکان شما همینجا بودن بعد از اینجا رفتن به اروپا کشور اروپایی رو تشکیل دادن یا به مرکزی تشکل مادر ایران فشار مادر ایران سوال فرمودن که به جای واژه‌ی صفحه چه واژه‌ای رو رویه یک بار دیگه من میگفتن رویه من یادم. به جای بلی به جای برق که به عربی چیز معارف شد ورق میگن ورق یا ورقه یا ورق نه درست نیست این برگ فارسی که معارف شد برای که غیر از ورق اوراق ما چیزی دیگه نداره تورقم توی ایران نمیشندگان زمان قاجاری اینها میمشن تورق ولی دیگه چیزی دیگه نداره بروزن افتحال و مفتعل و استفعال و فلان هیچ کدوم از اینا ها نمیتونه بره پس واژه واجه ایرانیه و برگه روی برگه با سلام چرا آذر را با ذا می مگر این واجه پارسی نیست و دا از حروف عربی نیست دانش بود از سپاهان درود بر سپاهان در زبان عوستایی و فارسی باستان ما و داشتیم و بعد در پهلوی هم ادامه پیدا کرده در فارسی دری هم در نزد نزد دوره اول ما خیلی جه ها می بینیم که به جای دال یا به جای زید وال هست و, و بعد کم کم واجه ها به صورت زی نوشه شد ولی خب شما می بینیم هم آذر هم که می با و با با با آذر متعلق به ماست این در پهلوی آتور در فارسی شد آذر شما شنونده برنامه پنجره های به محتب هستید از رادیو فرهنگ آقای دکتر فریدون جنیدی داستان های شاهنامه را برای ما میخوانند رمزگوشایی میکنند بخش رو که مربوط به شاهنامه هست و سوالات مختلف رو در زبان و فرهنگ ما میفرماید تلفن‌های های برنامه 220-4185 دیویست و بیست چهارسد هشتاد پنج دیویست بیست و دو و بیست دو و شماره پیامک سی هزار پانسد و و هشت سی هزار و رفتند هر دو به نزدیک شاه سخون برگوش آدن در پیشگاه به دو گفت شاهی خرب من پیر منه زهر برنده در جامع شیر خطاب به گودرز میکنه به نهتیق و بک شاهی زاهن میان نباید که این سود خیزت زیان یعنی این سودی که تو تصور میکنی برای ایران زیان به را بیاره چون این گفت توس سپه به شاه که در شاه سیر آمد از تخت و تلفظ درست سیر همه جا سیر میگن در گیلان هم شاید من گفت در گیلان هم سیر میگن اون خوراکی سیر هست و سیر اه، که در شاخ سیر آمد از تخت و گاخ چو فرزند باشد نبیره کلاه چرا به هد برنشیند بگا فرزند یعنی فری برخ هست و چرا نبیره یعنی نوه و بر, بر تخت شاهی بشینه به گفت گودرز که کم خرد میبینی تنده گودرز با اینکه در انجامان معیستان هستم باز تندی میکنه بدو دو گفت گودرز که کم خرد ترا بخرد از مردمان نشمرد بگی چی کسی چون سیاوش نبود چون او راد و آزاد و خاموش نبود میبینید که خاموش بودن یعنی کم سخن بودن یکی از های خوب بوده در ایران باستان جایی هستش که کابوس میگه که به خطاب برستم که که پروردگار سیاهوش توی خردمند و بیدار و خاموش توی هم خردمندی هم بیداری هم زیاد سخن نمیگه چون زیاد سخن کسی که بسیار گفتگو گفت بکنه خب البته اندیچه کمتر داره دیگه. بیشتر از روی احساسات سایده و گذیده, گوی. و گذیده گوی. کنون این جهانجوی فرزند اوست هموی هست گویی به چهره و به پوست گر از تور دارد ز مادر نژاد، هم از تخم شاهی نپیچد زداد یعنی بلاخل تور هم فردند فرد به توران و ایران چنون چنو نیز کیست چنین خام گفتارد از بحر چیست تو چشمت نبیند همین چهر او چنان برز بالا و آن مهر او به جهونو گذر کرد و کشتی نجست به فر کیانی و رای درست به و فریدون کذربند رود گذشت و به کشتی نیامد فرود مردی و از فره ایزدی از او دور شد چشم و دست بدی تو نوزر نژادی نبیگانه ای چون توس فرزن نوزر بوده تو نوزر نژادی نبیگانه ای پدر تند بود و تو دیوانه ای میبینید گودرز در انجمن المهستان تند سخن میگه پدرتون تو نوزر تند بود و تو دیوانه به دو گفت توسه جهان دیده پیر چگویی سخن های هاینا دلپذیر به گفت گفته جان دارشا، تو دل را مگردان ز این را، دو فرزند پرمایه را، پیش خان، سزاوار گاهند و هر دو جوان، ببین تازه هر دو سزاوار کیست، که با برز و با فره ایزدیست، به دو تاج بسپار و دار، چو فرزند بینی همی شهریار، به تو گفت کاووس کین رای نیست مرا بر دو فرزند بر دل یکیست یکی کار سازم که هر دو زمن نگیرند کین اندرین انجمن. دو فرزند ما رو کنون با دو خیل به باید شدن تا در اردبیل نگاه کنید که اینجا در فارسی اردبیل گفتیم که خود اهالی گرامی اردبیل هم میگن اردبیل هنوز درستش باجی درست عربه بیل. عربه بیل. عربه بیل. به مرزی که آنجا دژ بهمن است همه ساله پرخوش اهلی من به رنج از زهریمن ایزد پرست هست نیارد یعنی جرات نمیکنم یارستن یعنی جرأت کردم نیارد بدان مرز موبت نشست از ایشان یکی کن بگیرد به تیغ ندارم از او تخت شاهی دریق بر در این یک سخون دلبیه ها راستم تا پیش جهاندار برخواستم این بخشی که شدیفترین گفتارهای تاریخ ایران شاهنامه است که خب چون بعدن میاده که صحبت دیو و احریمان اینا میشه مثل بقیه دادتانه افضاده اون رو همیطور از روی خیال و اندیشه گرفتن به قدر این بخش تاریخی مسجل و مستندی که خدا میدونه تو همطور که بارها گفتم من نمیتونم الان بهش گفتم میکنم به داستان دفتر, دا. دفتر دوم داستان ایران. ما میاد بخ... ای خیلی موکول میکن. من... من کار خودم کردم با صفح بند یاشین کارم مشکلی است دیگه امید دارم تا نوروز به دست ایرانیان برسه دیگه میدهم به اکثر بر مشور کتاب سالهنده برسه دیگه. این امید دارم من کار خودم انجام دادم به یک مشکلاتی گیر کرده که این مشکلات بعد مشتفاشه. با امید خدا خب این اینجا دجیبه همه چنین گفت با شاه هوشیار توس که من با سبخبت برم پیروکوسینی بافری برس بدو گفت شاهر تو رانیزه پیش زمانه نگردد زمانه این به برای خداوند خورشید و ماه توان ساخت پیروزی و دستگاه فری را گرد چونین از رای تو لشکر بیا رای و منشین چون از بهمن که بهمنده رسید زمین همچه آتش همی بردمید بشد توس با لشکری جنگ جوی به تندی سوی دژ نهادند روی سر باره دیج بودند در هوا ندیدند جنگ هوا را روا به این داستان درسته و من اون تصویراشو که وقتی بیارم گفتارهای دانشی همراه با اون رو بیارم شما شگفت زده میشید یعنی جهانیان باید شگفت زده باشند که شاهنامه چه تاریخ درستیه سر بارهٔ دش بودن در هوا ندیدند جنگ هوا را رو روا بگشتند یک هفته گردن درش دیده ندیدند جایی درش بنوامیدی از جنگ گشتند باز نیامد بر از رنج راه دراز چه آگاهی آمد با آزادگان برای پیر و گودرز و کشبادگان. بیا راست پیلان و برخواست گل بیا آمد سپاخ جاندار نو یعنی که خسرو همراه با گودرز دل.